الو ادین قنیه زیچچه 620 یادم نمی آید که هیچ وقت این قدر خجالت کشیده باشم. انگار ماها همکاری پدرم با آدمی زندی چم مایه خجالتم بوده حالا هم نوبت رسیده به موسیقی و رقص. پدرم چطور توانست جلو چشم مردم خودش را کوچک کند؟ تازه همه می گفتند میان تماشاشیها. در قسمت زنانه روسپی معروف هم نشسته بوده. میگویند نشانده شمس است. این دیگر چهجور شری است. لابد باقی عمرمان را هم باید بنشینیم و کسافتکاری های شمس را تمیز کنیم. امشب که نشسته بودم و به این چیزها فکر می کردم، اولین بار در عمرم آرزو کردم، ای کاش در خانوادی دیگر به دنیا آمده بودم. من که افتخار می کردم به اینکه که پسر همچو پدری هستم، الان می سوزم از این که چرا فرزند کس دیگری نیستم. این آیین به نظر من از آن رقاسی های بود که به هیچ وجه شایسته عالم بزرگی مثل پدر من نیست. اما اتفاقاتی که بعد از سماع اصلی افتاد، مو به تنم راست کرد. این شمس بی و درد چطور جرأت می کند یکی از ارکان حکومت را تحقیر کند. یک نان بخورد، سب تا نان بدهد به گدا و خدا را شکر کند که کیخسرو دستور نداد دستگیرش کنند و دارش بزند. وقتی دیدم شیخ یاسین و شاگردهایش پشت سر که دارند بیرون می من هم به آنها ملحق شدم. دوست ندارم اهالی فکر کنند طرف شمس را گرفتم. باید همه بدانند برخلاف برادر بزرگم عروسک خیم شببازی پدرم نیستم. آن شب به خانه برنگشتم. با چندتا از دوستهایم در خانه ارشاد ماندیم. تا صبح نشستیم و در باره ماجراهای آن روز صحبت کردیم. ارشاد با آن صدای تو دماغیش می گفت این یارو بد جوری پدرت را تحت تأثیر قرار داده. میگویند مدتی مدتیست روسپی را توی خانه مخفی کرده. تو هم نتوانستی حرفی به ما بزنی، این چه بازاری است علا ادین، اد تو باید این لکه ننگ را پاک کنی. این حرفها را که میشنیدم، میخواستم از خجالت آب بشوم و بروم توی زمین. وضعیت معلوم بود، شمس مصیبتی بود که به سر خانواده من آمده بود. آن شب تصمیمی مشترک گرفتیم. شمس تبریزی یا باید شترش را همان جایی که ما میگوییم به خواباند یا اینکه از این دیار برود. یا با زبان خوش میرفت یا با زور. فردای آن روز به خانه برگشتم تا مرد و مردانه با شمس حرف بزنم. مسمم بودم. دیدم تک و تنها توی حیات نشسته داشت نیمیزد سرش خمیده چشمهایش بسته پشتش به من بود در موسیقی غرق شده بود و ملتفط آمدنم نشده بود مثل موش آرام و بیصدا از پشت نزدیک شدم گفتم تا فرصت به دستم افتاده دشمنم را بهتر بشناسم کمی بعد موسیقی به پایان رسید شمس سرش را بلند کرد طوری که انگار با خودش حرف بزند گفت: سلام علا اددی دنبال من میگشتی؟ حرفی نزدم چون میدانستم پشت درهای بسته را هم میتواند ببیند به نظرم تعجب آور نیامد که پس کلهاش هم چشم داشته باشد شمس صورتش را به طرف من گرفت و در کمال پختگی پرسید آیین دیروز به نظرت چطور بود؟ پسندیدی؟ گفتم اصلا نپسندیدم. رقاص بازی بود. بیا بازی را بگذاریم کنار. باشد. از تو هیچ خوشم نمی آید. اجازه نمیدهم بیش از این اعتبار پدرم را لکهدار کنیم. شمس را آهسته کناری گذاشت. گفت پس مسئله این است. اگر اعتبار پدرت لکهدار شود دیگر کسی به تو به چشم پسر عالمی محترم نگاه نمی کند و امتیازات خاصی که در جامعه داری از دست می رود. نگران این هستی؟ چه اهمیتی دارد مردم چه فکری می کنند؟ برای اینکه اجازه ندهم پا روی رگ اعصابم بگذارد، خود را به نفهمیدن زدم. اما باز هم طول کشید تا آرام شوم. گفتم: دیگر برو از اینجا. برو تا آرامش پیدا کنی. قبل از آمدنت خیلی خوب بودی. پدرم عالمی معتبر بود و پدری خوب. شما دو نفر هیچ وجه مشترکی ندارید. ابروهای شمس در هم رفت. آهی عمیق کشید. یک دفعه به نظرم شکننده رسید. می توانستم با یک مشت محکم یا با کوبیدن سنگ به کله جانش را بگیرم. آرزوی کشتنش چنان بر قلبم چنگ انداخت که نتوانستم به صورتش نگاه کنم. مجبور شدم نگاهم را بدزدم. دوباره که نگاهش کردم دیدم شمس طور غریبی براندازم می کند. انگار فکرم را خوانده بود. یک دفعه موهای تنم سیخ شد. انگار در یک لحظه هزاران سوزن به تنم فرو رفت. زانوهایم سست شد. کاسه زانوانم شل شد. انگار دیگر نمیخواستند بار تنم را بکشند. حتما جادویی در کار بود. یادم رفته بود شمس جادوگری هم میداند. نکند فهمیده میخواهم آسیبی به او برسانم؟ و حالاست که بکشدم. شمس یک دفعه گفت چقدر از من میترسی ترسی هیف اگدین؟ حیف می دانی مرا یاد چه کسی می اندازی؟ شاگرد لوچ گفتم چی داری می گویی؟ گفت دارم داستان می گویم داستان دوست داری؟ گفتم آنقدر وقت ندارم که سرم را به اینجور چرت و ها گرم کنم. شمس لبهایش را جمع کرد و گفت انسانی که برای داستان وقت ندارد برای خواندن کتاب کائنات هم وقت نخواهد داشت. بهترین داستانها را خدا می نویسد مگر نمیدانی و بیان که منتظر جوابم بماند این داستان را تعریف کرد در زمانهای دور استادی زندگی می کرد که شاگردی اخمو داشت این شاگرد لوچ هم بود یعنی همه چیزها را دوتا میدید. روزی استاد به شاگردش می گوید برو از پستو یک شیشه اصل بیاور شاگرد می رود اما دست خالی برمیگردد و میگوید اما اوستا توی پستو دوتا شیشه اصل هست نفهمیدم کدام یکی را بیاورم استاد که به اخلاق شاگردش وارد بود میگوید برو یکی از آن شیشه ها را بشکن و آن یکی را بردار و بیاور باشد افسوس که شاگرد ابله حکمت این کلام را در نیافت جلدی به پسور رفت و یکی از شیشه ها را شکست. اما چشمت روز بد نبیند دید که شیشه دیگر هم با شیشه اول شکسته. پرخاش کنان گفتم: منظورت چیست؟ نمیخواستم جلو شمس عصبانی بشوم و ضعف نشان بدهم. اما نتوانستم جلو خودم را بگیرم. گفتم برو بابا تو هم با این داستانهای ست قازت. نمی توانی توی عمرت یک بار هم که شده لغمه را دور سرت نشرخانی و حرفت را واضح بزنی؟ شمس گفت حرفم که خیلی واضح هست. تو هم عین شاگرد لوچ هر جا که نگاه می کنی دویی می بینی من و پدرت یکی هستی اگر مرا بشکنی او را هم شکسته. نمی فهمی علا گفتم هیچ چیز مشترکی با پدرم نداری و من با شکستن دومین شیشه شیشه اول را هم از اسارت نجات می دهم دلم چنان پراسکینه بود که حتی به این فکر نکردم که حرفهایم ممکن است چه زخمهایی بزند